چشمایش را باز کرد، اتاق عزیز پر از نور بود، ستون طلایی آفتاب از آستانه در افتاده بود توی اتاق و کسی در میان آن سیلا به زرین، نزدیک او ایستاده بود و صدایش میکرد. کجا بودین؟ صدا شنا بود، اما صورت میان انواج نور پوشیده بود، خوب نگاهش کرد، شناخت، سونا بالای سرش ایستاده بود، پاهایش را جمع کرد و گفت، دیشب رسیدم، اومدم اینجا. چرا اینجا؟ پس کجا باید میرفتم؟ سونا سنا ساکت ماند اسمایل پرسید استوار چی شد؟ نمرده بیمارستانه نفس راحتی کشید آنا حالش چطوره؟ حتما از کردن چیزی نبود آنا هم حالش خوبه همه نگران شما بودیم کجا بودین؟ همین اطراف بودم جایی نرفتم شونتون چرا خونی شده؟ تورینی نیست. سگ وحشی گاز گرفت. خوب میشه. راستی از ملا چه خبر؟ شنیدم ازش خواستن جای شما رو بگه. اون که از من خبر نداشت. من از اون بیخبرم. میخوای برم به مادرم بگم مرهم درست کنه؟ به مادرت نه. ممکنه سرخان بفهمه. برو به آنا بگو. هم خیالش راحت بشه که اینجام و هم فکری برای این زخم بکنه. سونا کمی مکس کرد و پرسید. حتما و هم هستی و میارم چند بقل علف برداشت و توی سبد ریخت و آن را بر دوش انداخت موقع رفتن گفت چفت در رو از پشت میندازم اینجا بیشتر یا من میام یا مادرم بازم موازب مواظب باشین بیرون رفت و همانطور که گفته بود چفت در را از پشت انداخت اسمایل خیالش راحت شد دیدن سنا و شنیدن خبر سلامتی آنا آرامش کرد مانده بود ملا به بافای علوف تكیه داد زخم را چندان احساس نمیکرد انگار با آن خو کرده بود حالا بیشتر تشنگی را احساس میکرد. مخصوصاً زمانی که شرش آب گووارای چشمه از روزنه اتاق عزیز شنیده می شد. بوی نانی که در تنور خانه های بنفش در رپخته می شد نیز اشتهایش را تحریک میکرد. زندگی روزانه شروع شده بود. صدای صحبت زنها و فریاد بچه ها و صدای مرغ و خروز ها بلند بود. گنجشها که زیر سقف چوبی اتاق لانه داشتند مرتب در حال رفت و آمد بودند و به جوجههایشان غذا می رسندند. فصل تخمگذاری و لانهسازیشان بود با پنجه های کوچکشان میچسبیدند به دیوار کاهگلی و یک بند جیک, جیک میکردند و از جوجههایشان جواب میشنیدند چشمایش را بست خود را در حال آب خوردن از چشمه دید گاهی دستهایش را کاسه میکرد و پشت سر هم میخورد زمانی هم سونا کاسهش را از آب لپر میکرد و میداد به دستش و او یک نفس میخورد و آتش تشنگیاش را خاموش میکرد چفت به صدا درآمد و باز شد نور آفتاب تابید روی بافه ها و اتاق عزیز را روشن کرد. سونا با کوزه کوچک آب و بخشه زیر بغل آمد تو. کوزه را به دیوار تکیه داد و بخچه را روی بافه ها گذاشت و آهسته گفت: همین الان از چشمه پرش کردم. توی بخشم نون و پنیر آوردم. با همان شتابی که آمده بود با همان شتاب هم بیرون رفت و او را با جیغ گنجشک ها و کوزه آب و سفره نان تنها گذاشت. خنده‌ای بر های خشکیده اسماعیل نشست. به زحمت از جا بلند شد. مقابل کوزه دو زانو نشست، آن را بلند کرد و دهان مدور و مرتوب آن را روی لبهای تبدار و تشنه‌اش گذاشت. سپس سرش را بالا گرفت و گذاشت تا آب کوزه قلقل بریزد توی گلویش. چند بار این کار را کرد. وقتی سیر شد، نفس عمیقی کشید و آهسته زیر لب گفت: سلام بر تشنگیت. و اشک دور چشمهایش حلقه زد. برای خوردن نان و پنیر باید دستهایش را میشست لکه های خشکیده خون هنوز در شیار خطوط کف دست و گوشه انگشتانش باقی بود. کوزه را روی بافه‌ی علف گذاشت و با یک دست آهستان را خموند و آب را ریخت توی کاسه کف دست دیگرش و بعد کوزه را راست گذاشت و دستایش را شست. چند بار این کار را کرد تا نان و پنی به او بچسبد. آنها را با علوف خشکاند و سفره‌ی کوچکش را باز کرد و روی یک کنده زانون نشست و با همان اشتهایی که آب را سرکشیده بود، مشغول خوردن شد. نزدیک ظهر باز سنا آمد بشخابی را که رویش پارچه انداخته بود گذاشت نزدیک اون آنا فرستاد. پس فهمید آره میخواست خودش بیاد گفتم امروز نه شک میکنن کار خوبی کردی هر طور که صلاح دونستی بیارش سنا مکس کرد و پرسید چیزی نمیخوای؟ نه آب نون همه چیز هست موقع رفتن پرسید زخمت چی میتونی ببندیش؟ زخم چیزی نیست میبندنش. وقتی رفت و در را از پشت بست بلند شد. لباسهایش را درآورد، آگرد. را لخت کرد. اطراف زخم را شست بعد مرهم آنا را رو روی آن گذاشت با پارچه بست و لباسهایش را پوشید. پس از شستشو و گذاشتن مرهم زخم زغزغ می کرد. دردش تازه شده بود نتوانست بنشیند. بلند شد و راه رفت تا شاید با قدم زدن سوزش زخم را فراموش کند. یک دستش را روی شانهاش گذاشته بود و در مساحت کوچکی میرفت و برمیگشت و هر وقت نزدیک در می میرسید و چشمش به روشنای خورشید میافتاد انتظار داشت هر آن چفت به صدا در بیاید و در باز بشود و سونا بیاید تو در همان حال در تکان خورد به گمان اینکه باز هم سنا آمده ایستاد وقتی در باز شد صفورا آمد تو اسماعیل خود را به زحمت کشید کنج و اتاق و میان بافهها پنهان شد سر وصدایفرارابشک سبد را رو از روی دوشش زمین گذاشت و با صدای بلندی گفت پیشت پیشته صاحب مرده اسماعیل حتی نفسش را هم توی سینه حبس کرده بود نمیخواست صفورا سفورا به او آمده و در انبار آنها پنهان شده اگر لازم می شد سنا می ساکت ماند سفورا کمی کاه و الوفه خورد شده توی سبد ریخت وقتی خواست آن را بلند کند صدای پایی آمد کس دیگری وارد شد و گفت از پا افتادم از بس دنبالت گشتم هیچ معلوم کجایی؟ سرخان بود که با صدای خسته اما خشن و با کنایه این حرفها را میزد. کجا رو دارم برم خونه بودم. الان اومدم برای گساله کمی علف ببرم. دروغ میگی مثل سگ دروغ میگی نبودی خونه نبودی. نه تو نه اون دخترت. من نمیدونم شما دوتا تا کجا میرین با کی سر و سر دارین. چی میگی مرد؟ من آبرو دارم، دخترم آبرو داره ما ناموس تویم چرا این حرفو میزنی؟ ناموس آدم بیناموسی نمیکنه تو از اولم منو نمیخواستی مجبور شدی به خاطر ملک و املاکت سایه ای منو بالا سرت قبول کنی اما دلت جایی دیگه بود تو نذاشتی و نمیذاری اون دختر زن استوار بشه فکرایی تو کلتی که من سردر نمیارم آخر رو تو بزن سرخان. منم سردر نمیارم حرف آخر، حرف اون بزنم؟ میزنم میزنم تو و دخترت با رابطه داری. من میدونم با کی با نوه آنا با نوه آنا جیغ کشید صدایش گنجشکارا ترساند ای خدا شاهد باش ببین ببین اسماعیل مخفیان رو نگاه کرد سفورا روی دکنده ی زانو نشست با دستهایش هر دو سینه‌اش را بلند کرد و سر به سوی آسمان برد و با حق حق گفت ای خدا من یه مادرم تو رو قسم میدم به اون شیری که تو سینه های من جاری کردی یا جواب این مردو بده یا جون منو بگیر و خلاصم کن سرخان دست برد و بیلی را که به دیوار تکه داده بود برداشت و بلند کرده گفت: الان خودم خلاصت میکنم بیا برو. و کفشه بیل را کوبید به سر صفورا. صدای زنگدار آهن و قاچ خوردن و استخان پیچید توی انبار. صفورا جفت سینه‌هایش را رها کرد و مثل گنجشکی که سنگ تیر تیرکمان پسرکی به او خورده باشد. نالید و به پهلو افتاد. سرخان سراسیمه به اطراف نگاه کرد. اسماعیل سرش را خواباند و بی‌حرکت ماند. صدای پاشنید، ساقه های خشک کلش ها زیر سنگینی آن پاها می شگستند، سرخان سرگردان و بلا تکلیف قدم می زد. بعد هم در را باز کرد و بیرون رفت، اسمایل نتوانست پنهان بماند، بلند شد و با عجله به طرف سفور را رفت، به پشت افتاده بود، سرک سمت در بود، خون از بینی و بناگوشش گلگل گل می جوشید و میریخت روی خاک و کلش کفه انباری و از آنجا برای خود راه باز می کرد و از زیر در می زد بیرون. صفورا با همان قد بلند های رنگی و روسری سفید دراز کشیده بود. آثار دردی عمیق و ناگهانی در خطوط صورتش مشاهده میشد. خم شد و صدایش کرد: "خاله؟" "خاله صفورا بلند شو. بلند شو." اما صفورا نه بلند شد نه نفس کشید و نه حتی آهی یا نگاهی. همانجا مثل یک خاطر گرامی و در حال پجمردن بر خاک ماند. حالا فهمید او را مثل خالهی نداشته‌اش دوست داشته و جای خالیش را خیلی زود احساس کرد. آخرین تصویری که از صفورا در ذهنش جان گرفت، عبور او از روی پل چوبی بود که دو سوی رودخانه خروشان را به هم وصل می کرد صفورا را با همین لباس و با همین قد بلند و با متانت و مهربانی میدید که از روی پل گذرد تا به آن سوی رود برسد و سپس از آنجا راه زپه بلند را در پیش بگیرد و دور شود. هیچ کاری از دستش بر صفورا رفته بود یا به قول خودش خلاص شده بود با همین مظلومیت و بی کسی. حالا مانده بود سونا که به همین قد و قاعده بود و خیلی شبیه مادر هم در خلق و خو و هم در منش و کردار خون مثل آب چشمه بنافش در را از پس سر صفورا بیرون می زد و از زیر آستانهی در بیرون می رفت. در این فکر بود که آخرین جوی خون به کجا ختم می شود در همان حال سایه هایی را در آن سوی در, در حال در شدی. از جرز ها نگاهشان کرد، گاو بودند جوی خون و بوی آن حیوانها را تا پشت در بود آنها خون را میبوییدند و با صدای بلند ماغ میکشیدند اول دماغشان را به خون میآغشتند و بعد سرهایشان را بالا میگرفتند و رو به آسمان ماغ میکشیدند رفتارشان غیرعادی بود همانطور صدایشان انگار با تمام توان مینالیدند چیزی نگذشت زش که گاوهای دیگر هم در طویله ها یا در مزارع حاشیه‌ای و نفش دره شروع به کشیدن کردند صدایشان در ده پیچیده بود مرغ و خروس ها هم قاطی آنها شدند بلند بلند قط قط می کردند در همان حال صدای اسحاق از پشت در آمد ای بابا این ها چشون شده یه دفعه دیوونه شدن و بعد وقتی جوی خون را دید که از زیر در بیرون زده گفت این خون دیگه چیه عجب پس دیوونه شدن حیونا به خاطر همینه. واگویه اسحاق و ماغ مقموم گاوها ادامه داشت که فریاد ناله ی سرخان هم بلند شد. ای مردم بدبخت شدم خونه خراب شدم. بیایم ببینین چی به سرم اومده؟ پیش از آنکه در باز شود باز هم اسمایل خود را پنهان کرد. اول سرخان به دنبال او اسحاق با آفتابش وارد شد. گاوها با چشم های ورقوم و سرخ در حالی که باد به پره بینیشان میانداخند و بو میکردند، با کنجکاوی سرک میکشیدند و بیقراری می میکردند. سرخان با همان بیل بیرونشان کرد. بیرون بیرون سگ‌ها. ها پراکنده شدند و در فاصله دورتری ایستادند و ماخ کشیدند. سرخان در حالی که به جنازه ی سفورا نگاه میکرد کلاهش را از سر برداشت و خطاب به اسماعیل گفت: میبینی پسرخاله؟ حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ اسحاق پوسخندی زد و گفت: چرا میخوای خاک بریزی تو سرت؟ ببر این خاکش کن و بعد برو یکی دیگه بگیر تو که این کارا رو خوب بلدی سرخان برف روخت ای جهود بد دهن زود باش خودتو برسون به خرابه الان اینجا رو به گند میکشی. کم کم مردم آمدند و گاوها و مرغ و خروزها را پس زدند و داخل شدند با دیدن جنازه زبانشان بند می آمد. افسوس میخوردند. آنطور که معلوم بود بنافش در ریها به صفورا بیشتر از سرخان اهمیت می دادند و احترامش را نگه می داشتند. در آن میان اسماعیل گریه هایشان را شنید. اهالی باورشان شده بود که صفورا مرده است. زنها گریه می کردند و مردها پچ پچ عجب یعنی چی؟ کی این کارو کرده؟ سفور اهل دعوا و مرافعه نبود که؟ نه نبود والا خوش اخلاق و خوش رو بود. الله اکبر، مگه میشه؟ صدای گریه و شکوه سرخان کم کم اوج میگرفت. بیچاره شدم، حالا چیکار کنم؟ چرا با من این کارو کردن؟ چرا بدبختم کردن؟ سفورا، سفورا؟ یکی گفت، نذارین زیاد گریه کنه، قلبش خرابه. کد خدا سرخان وقت برای گریه کردن زیاده، بلند یه فکری برای جنازه بکنیم. شب و روزم اگه گریه کنم بازم کمه شما نمیدونید صفورا چقدر خوب بود من میدونم قاتل از همین بنفشه درهس اما اینجایی نیست اهل اینجا نیست چند روز پیش رئیس پاسکا به اون روز افتاد امروز نوبت صفورا بود فردا معلوم نیست نوبت کی باشه خرابکارا جون گرفتن دارن مملکت رو به هم می‌ریزن من صدای آنها حرف سرخان رو قطع کرد به جای تهمت زدن به فکر کفن و دفن این بیچاره باش هان چی شد مثل اینکه ترسیدی منم جای تو بودم می ترسیدم وقتی قاتل تو خونه آدم باشه بایدم و پاشو گم کنه ناگهان اوضاع عوض شد شنید که چند نفر گفتند خیلی خوب ساکت باشین دخترش اومد سر و صدا کم شد زنی گفت ای سیاه بخت سایه پدر که بالا سرت نبود اینم از مادر اسماعیل منتظر گریه و بیتابیه سونا بود اما صدایی از او نشنید دیگران هم سکوت کرده بودند صدای پا آمد. کسی به پناهگاهون نزدیک میشد. ترسید تنها سنا از وجود او در آنجا خبر داشت و مادرش هم در همان اتاق کشته شده بود قلبش به شدت می‌تپید از سنا ترسید منتظر بود هر لحظه فریاد بکشد و بگوید من قاتل مادرمو می‌شناسم اینجا قایم شده آن وقت حرف سرخان را هم باور میکردند. قلبش چنان می‌کووید که نگران شد دیگران هم صدایش را بشنوند صدا چند بار نزدیک و دور شد بار آخر آنقدر دور رفت که دیگر آن را نشنید به جای صدای چند زن و مرد چنیده شد یعنی چی؟ جنازه مادرش دید و یه چی که اشکم نریخت عوضش مثل خانومای تهرونی هی قدم زد اصلا به روی خودشم هم نیاورد. کاش یکم گریه میکرد خدایی نکرده دلش میتریه. صدای سرخان سکوت را شکست دیدین گفتن زیر کاسه نیم کاسه است تا حالا کی دیده یا شنیده که یه دختر بالایی سر جنازه مادرش مثل ملکه ها وایس و نگاه کنه و بعد بره بیرون و یه آه سردم نکشه شانس منو میبینیم مردم حیف یکی گفت مامورای پاسکا اومدن دیگری گفت خوب شد حالا قاتل رو پیدا میکنه. غریبه ها از سرخان سوالاتی میکردند و او هم با صدای گرفته و غمگین جوابشان را میداد بعد اسحاق را صدا زدند، از او هم چند سوال پرسیدند، از حرفهای پراکنده فهمید که سونا را هم آوردند و از او درباره مادرش میپرسند، اما سونا حرف نمیزند، چند بار هم که سکوت را شکست گفت نمیدونم، اجازه دفن داده شد، جنازه را با عجله از اتاق عزیز بردند، پس از مدتی صدای لا اله الا الله اهالی بلند شد، جنازه سفورا روی دوش مردم برای رفتن به گورستان بنفش در میشد. میشد. از سنا خبر نداشت. نمیدانست آیا او هم همراه جمعیت دنبال تابوت می رود یا توی خانه میماند ماند و زانوی قم بغل می کند و عشق می ریزد. اما از آنها خیالش راحت بود. میدانست که پا به پای مردم به گورستان می رود و برای دفن سفورا کمک می کند. باز همسایه سنگین سکوت افتاد روی بنفش در ره. تنها شرشور یک نواخت چشمه به گوش می رسید و بانگ گاه به گاه خروز ها و پارس سکه ها. دلش می خواست می توانست از زیر بافه های علف بلند شود و به سمت گورستان برود. آنجا همراه مردم بر جنازه سفورا گریه کند و به سونا بگوید که مادرش را او نکشته. بلکه قاتل خود سرخانست و دارد دروغ می گوید. آهسته با خود صحبت می کرد. دروغه دروغ باور نکن سنا قاتل خودشه. درسته که ندیدم اما شنیدم که مادرتو کشت با بیل زد و کشتش با این گوشم هم دعواشونو شنیدم هم حرفاشونا و هم صدای کف بیلو که خورد به سر مادرت دنگ صدا کرد مثل اینکه به سنگ خورده باشه مادرت نالی و صداش قطع شد من ندیدم اما شنیدم گوشام که کر نبودن بعدم که سرخان رفت اومدم بیرون دیدم خون مثل آب چشمه میزنه بیرون حالا اون میخواد اون خونو گردن من بندازه باور نکن سنا، باور نکن آخه من چرا باید این کارو بکنم؟ مادر خدا بیامرزد برای من مثل یه خاله بود. من به چشم خاله خیلی مهربون به اون نگاه میکردم. چرا باید دست به روش بلند کردم؟ ممکنه سرخان بگه سفورا پناهگاه منو کشف کرده بود و میخواسته فاش کنه و من برای اینکه ساکتش کنم اونو کشتم. خیلی خوب. از این بالاتر که نمیتونه بگه. بازم من دست روی مادرت بلند نمیکردم. اگر اگرم میرفت خبر میداد که من اونجا هستم چه اتفاقی میافتاد؟ نهایتا اینکه دستگیرم میکردم خب بکنن اما من دست به روی مادرت بلند نمیکردم باور کن سونا امکان نداشت من این کارو بکنم یه ذره هم امکان نداشت از یه چیز بیشتر میترسم اونم شک تو نسبت به منه میترسم فکر کنی من قاتلم من مادرتو گشتمون نتونم ثابت کنم شکتو برای من بزرگترین شکنجه است این یکی رو نمیتونم تحمل کنم راه میرفت مینشست می‌خوابید اما همش در فکر بود گاهی هم فکرهایش را به زبان میآورد و آنها را بلند بلند مرور میکرد